انتقال مسلم علیه السلام به خانه هانی و جستجوی ابن زیاد هنگامی که حضرت مسلم علیه السلام از ورود ابن زیاد و سخنرانی او با خبر شد در مورد مشخص بودن محل اقامتش از جان خود بیمناک گردید از خانه مختار بیرون آمد به خانه هانی ابن رفت هانی به او پناه داد در آنجا نیز رفت آمد شیعیان و دیدار مسلم علیه السلام بسیار شد ابن زیاد جاسوسانی را بر آن حضرت گمارده بود وقتی که ابن زیاد دریافت که مسلم علیه السلام در خانه است، محمد ابن اشعس، اسما ابن خارجه و امر ابن حجاج را احضار کرد و به آنها گفت چرا هانی برای دیدار ما نمیآید آنها گفتند نمیدانیم این بیمار است ابن زیاد گفت به ما نیز خبر رسیده که بیمار است ولی اطلاع یافتم که سلامتی خود را باز یافته و او در کنار در خانه‌اش می‌نشیند اگر بدانم که او بیمار است حتما از او عیادت کنم. با او ملاقات کنید و به او امر کنید که در وظیفه‌اش نسبت به ما کوتاهی نکند زیرا من دوست ندارم که موقعیت شخصیتی مثل او که از بزرگان عرب است نزد ما تیره شود سه نفرم از گور به سوی خانه هانی رفتند عصر بود دیدند او کنار در خانهاش نشسته است به او گفتند چرا از دیدار فرماندار کوتاهی می کنی؟ او از تو یاد کرده و سراغ تو را می و گفت اگر بیمار است حتما از او ایادت میکنم. هانی گفت بیماری من مانع ملاقات با ابن زیاد شده است آنها گفتند به ابن زیاد خبر رسیده که تو هر روز عصر کنار خانه ادمی و این ملاقات نکردن تو را یک نوع بی دانسته است و میدانی که حاکم بی و بی شخصی مثل تو را تحمل نمی کند زیرا تو رئیس قوم خود هستی و ما تو را سوگند می دهیم که همراه ما بیا تا نزد فرماندار برویم. آغاز گفتگوی ابن زیاد باهانی حانی لباس خود را طلبید و پوشید و سوار بر مرکب شد و با سه نفر مذکور به طرف دارالاماره حرکت کردند وقتی که حانی نزدیک دارالاماره رسید گویی احساس خطر کرد به حسان ابن اسما ابن خارجه گفت ای برادر زاده سوگند به خدا من از این شخص بیمناک هستم نظر تو چیست حسان گفت ای عمو سوگند به خدا در مورد تو احساس خطر و بیم نمی شود. چنین گمانی را به خود راه نده حسان نمیدانست که ابن زیاد برای چه حانی را احضار نموده است حانی با همراهان به دارالاماره رسیدند و با هم بر ابیدالله ابن زیاد وارد شدند وقتی که عبیদুল্লাহ حانی را دید گفت این نادان با پای خود آمد در این هنگام ابن زیاد به شورای قاضی که در آنجا حضور داشت متوجه شد و اشاره به حانی کرد و این شعر امر ابن معدی کره به زبیدی را خاند من خواهان زندگی او هستم ولی او اراده کشتن مرا دارد عذر خود را نسبت به دوست مرادی خود بیاور حانی گفت ای امیر مگر چه شده؟ ابن زیاد گفت ای حانی دست بردار این کارها چیست که در خانه تو به زیان امیر مؤمنان یزید و همه مسلمانان تهیه و انجام می گردد. مسلم را آورده ای و به خانه ات برده ای و برای او اسلحه و لشکر جمع آوری می کنی و گمان می کنی که این کارها بر من مخفی می ماند؟ حانی گفت مسلم در نزد من نیست و من چنین کارهایی را نکردم ابن زیاد گفت انکار نکن همه این کارها را نموده ای و مسلم ابن عقیر نیز در خانه توست گفتگو بین حانی و ابن زیاد به درازا کشید بهانی نسبت های ابن زیاد را که به او میداد انکار میکرد در این هنگام ابن زیاد غلامش معقل را که او را به عنوان جاسوس به خانه هانی فرستاده بود و او همه اسرار را گزارش کرده بود تلبید. او حاضر شد ابن زیاد به حانی گفت آیا این شخص را میشناسی هانی گفت آری در این هنگام هانی فهمید که معقل جاسوس ابن زیاد بوده که در خانه اشرفت آمد می نموده و همه اخبار را به او گزارش داده است گفتگوی هانی و ابن زیاد و مضروب شدن هانی به دست او هانی پس از سکوتی طولانی به خود آمده و به ابن زیاد چنین گفت خدا کار امیر را اصلاح کند گوش فراده و سخنم را بشنو و باور کن که سوگند به خدا دروغ نمیگویم. من مسلم را دعوت نکردم و به دنبالش نفرستادم بلکه او به خانه من پناه آورد و من به او پناه دادم و شرم کردم که او را از خانه بیرون کنم بار مسئولیتی بود که به دوشم آمد و به او پناه دادم اکنون که باخبر شدی مرا آزاد کن تا بروم مسلم را از خانه ام بیرون کنم تا هر جا خواست برود و من هم از این تعهدی که به او دادهام خارج شد ابن زیاد گفت سوگند به خدا دست از دوبر ندارم تا مسلم را به نزدم بیاوری و به من تحویل دهی حانی گفت نه به خدا سوگند من هرگز چنین کاری نمی کنم. آیا مهمانم را بیاورم و تو بکشی؟ ابن زیاد گفت سوگند به خدا باید او را نزدم بیاوری حانی گفت سوگند به خدا او را نمیآورم. گفتگوی ابن زیاد و هانی بسیار شدید شد در این هنگام یکی از طرفداران ابن زیاد به نام مسلم ابن امر باهلی که از اهالی شام بود به ابن زیاد گفت خدا کار امیر را اصلاح کند به من اجازه بده تا حانی را به جای خلوتی ببرم و با او گفتگو کنم گفتگوی مسلم ابن عمر باهانی. خانگاه مسلم ابن عمر برخاست و همراه حانی به گوشه خلوتی از قصر که ابن زیاد آن دو را می دید برد و با هم به گفتگوی زیر پرداختند مسلم ابن امر گفت ای حانی تو را سوگند به خدا میدهم دهم کاری که موجب کشتنت بشود انجام نده و بلا و اندوه به قبیله خود وارد نساز سوگند به خدا من نمیخواهم خواهم که تو کشته شوی این مرد مسلم ابن عقیل با این گروه که میبینی پسر امو هستند و ایشان ابن زیاد و طرفدارانش نمیخواهند او را بکشند یا بزنند بنابراین مسلم را به آنها بسپار اگر چنین کنی هیچ سرفکندگی و عیبی بر تو نیست زیرا جزین نیست که تو مسلم را به سلطان سپرده ای حانی گفت سوگند به خدا چنین کاری برای من ننگ و سرفکندگی است زیرا در این صورت کسی را که مهمان من است و به من پناه آورده به دشمن سپردم با این که من زنده و تندرست هستم و میبینم و میشنوم و یاورانم قبیله مزهج و مراد بسیارند سوگند به خدا اگر من جز یک تن نباشم و هیچ گونه یاوری نداشته باشم مسلم را به شما تحویل نمیدهم تا در راه او بمیرم مسلم ابن امر همچنان هانی را سوگند میداد هانی نیز مکرر در پاسخ می گفت سوگند به خدا هرگز مسلم را تحویل ابن زیاد نمیدهم. زخمی شدن هانی با تازیانه ابن زیاد و زندانی شدن او ابن زیاد سخن و مقاومت هانی رحمه الله را شنید و دریافت فریاد زد هانی را نزد من بیاورید هانی را نزد ابن زیاد بردند ابن زیاد گفت یا مسلم را نزد من بیاور یا قطعاً گردنت را خواهم زد. هانی گفت: اگر مرا بکشی سوگند به خدا شمشیرهای برنده در اطراف خانه تو بسیار شود و مردم زیادی به طرفداری از من به جنگ تو درآیند. ابن زیاد گفت: وای بر تو آیا مرا به شمشیرهای برنده میترسانی؟ هانی گمان می‌کرد که قبیله‌اش به یاری او برمیخیزند سپس ابن زیاد فریاد زد هانی را نزد من بیاورید هانی را نزد ابن زیاد آوردند ابن زیاد با تازیانه یا چوب یا شمشیر باریک و نازکی که در دست داشت آنچنان بر صورت هانی و بر پیشانی و بینی و گونه او میزد که بینی او شکست و خون بر صورت و لباسش سرازیر شد و گوشت گونه و پیشانیش بر صورتش ریخت ابن زیاد سنگ دل همچنان به زدن خود ادامه داد تا این که آن تازیانه یا شمشیری که در دستش بود شکست با توجه به اینکه هانی در این هنگام 89 سال داشت جهید تا شمشیری را که در دست یکی از نگهبانان بود بگیرد و از خود دفاع نماید ولی آن نگهبان شمشیرش را نگه داشت و از گرفتن هانی جلوگیری نمود ابن زیاد فریاد کشید حانی را بگیرید و او را کشان کشان به سوی یکی از حجره‌های کاخ بکشانید و در آنجا زندانی نمایید و در آن حُجره را قفل کنید و نگهبانی را بر آن معموران مأموران دستور ابن زیاد را اجرا کردند در این هنگام اسما ابن خارجه و به قولی حسان ابن اسما برخاست و به ابن زیاد رو کرد و گفت ای امیر ما فرستادگان نیرنگ باز به سوی حانی بودیم تو ما را برای آوردن هانی فرستادی او را آوردیم ولی صورتش را مجروح کردی و خون چهره اش را به محاسنش سرازیر نمودی و اکنون میپنداری او را خواهی کشت. ابن زیاد از سخن اسما خشمگین شد و گفت تو اینجا هستی؟ سپس دستور داد او را انقدر زدند که به زمین افتاد. سپس او را در گوشه ای از دارال به زنجیر کشیده و زندانی کردند. او گفت انا الله و انا الیه راجعون ای هانی کشته شدنم را به تو خبر میدهم. شورش کوتاه قبیله مذهج راوی گوید به امر ابن حجاج که دخترش همسر هانی بود خبر رسید که هانی را کشتند او با همه افراد قبیله مزهج به طرف دارالاماره حرکت کردند و آن را در محاصره خود درآوردند. امر فریاد زد من امر ابن حجاج هستم این مردم سواران و شخصیت‌های قبیله مذهج هستند ما نه از اطاعت حکومت نافرمانی کرده‌ایم و نه از جماعت مسلمین فاصله گرفته‌ایم به ما خبر رسیده که رئیس ما هانی کشته شده است ابن زیاد از اجتماع قبیله مذهج و گفتار آنها با خبر شده به شریح قاضی فرمان داد نزدهانی برود و پس از دیدار با او بیرون آید و سلامتی او را به قوم او گزارش دهند شریح همین کار را به انجام رسانید و خبر سلامتی هانی را به قوم او داد آنها سخن شریح را پذیرفتند و از آنجا پراکنده شدند